خلق جان نه من مار جن من نار و قوله تعالی فی حق ابلیس انه کانا من الجن ففسق شعله میزاد آتش جان سفی کاتشی بود دل و سر ابی نه غلط گفتم که بود قهر خدا علتی را پیش آوردن چرا کار بی علت مبرا از علم مستمل رو مستغیث است از از در کمال صنع پاک مستعص علت حادث چگون جت یا حدث سرع چپ چه فد اب ما سن اوست سون مغز است و عبصورت چو پوست عشق دن ای فندوقتن دوستد جانت جوید مغز و کوبت پوستد دوزخی که پوست باشد دوستش داد بدلنا جلودن پوستش معنی و مغزت براتش آتش است لیک آتش را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 پوست ها بر پوست میر افزوده ای، لاجرم چون پوست اندر دوده ای. زن آتش را علف جز پوست نیست، قهر حق آن که را پوستین کنیست. این تکبر از نتیجه پوست است، جاه و مال آن را زن دوستد. این تکبر چیست افلت از لباب منجمد چون افلت یخ زافتاب چون خبر شد زافتابش یخ نماند نرم گشت و گرم گشت و تیز راند شد زدی در لو جمعه تن تم خوار و شد که زلزم من تنه چون نبیند مرز، قانه شد به پوست، بند از زمان قنه زندان اوست. عزت اینجا گیبری است و زلد دین، سنگ تا فانی نشد، کی شد نگین، در مقام سنگ یانگاهی انا، وقت مسکین گشتن توست و فنا کبر زن جوید همینشه جا همال که ز سرگین است گلخن را کماد. که این پوست را افزون کنند. شهم ده مو و کبر و نخوت آگنند. دیده را بر لب به لب نفراشتند. پوست را زان روی لب پنداشتند. پیشوا ابلیس بود این را را کوشکار آمد شبیه جا را مال چون مار است و آن جا وجدها سایه مردان زمرد این دورا زن زمرد مار را دیده جهت کور گردد مارو رهرو وا ره رو چون بر این رخار رخ بنها رئیس، هر که خستو گفت لعنت بر بریس، یعنی این قم بر من از قدر است، قدر را آن مقتدا صادق پی است، بعد از او خود برقر بر قرن آمدند، جملگان بر سنت او پا پازدند هر که حد سنت بد ای فتا تا در افتد بعد او خلق از اما جام گردد بر بیان جمعی بزه که سری بودست و ایشان دم قذه لیک آدم چارق آن پوستین پیش می آورد که هستم زتین چون عیازان چاروغش مورود بود، لاجرم او آقبت محمود بود. هست مطلق کارساز نیستیست، کارگاه هست کن جز نیست چیست. بر نوشته هیچ بنویست کسی، یا نهاده کاردن در مقرسی. کاغذی جوید که آن بنوشته نیست، توخم کارد موزهی که کشته نیست. تو برادر موزهی ناکشته باش، کاغذ اسپید نا بنوشته باش، تا مشرف گردی از نون و القلم، تا بکارد در تو توخ منزل کردم. خود از این پالوده نالی سیده گیر مطبخی که دیده ای نادیده گیر. زان که از این پالوده مستی ها بود پوستین و چارو از یادت رود چون در آید و مرگاهی کنی ذکر دلگ و چارو قانگاهی کنی تا نمانی عرق موج زشتی که نباشد از پناهی پشتی یاد ناری از سفینه راستی ننگری در چار و در پوستین چون که درمانی به قرغا به فنا پس ظلمنا بیر سازی بر بلا دیو گوید بنگرید این خام را سر برید این مرغ بی هنگام را، دور این خسرت ز فرهنگ عیاز که پدید داید نمازش بی نماز. او خروس آسمان بوده ز پیش نعره او همه در وقت خید.